بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وابعياه الأنبياء ربنا بالعباد والمرسلين حميد لله الحكيم وصاغ النبيين بالغاصب والمصطفى اللهم صل على محمد الله عليه وآل تیبین الطاهرین سیم و الله فی الاردین روحی و ارواح العالمین لطراب مهدمه الفدا ورعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام جنب الدین الحمد لله الذي جعلنا من الوت وشکین أمير ولایت امیر المؤمنین علیه اشتران و العیمت المعصومین علیه السلام حدیه بیشگاه مولانا و, و صاحب الاسل و الزمان. و جهت خوشنودی حضرتشون و تعجیل فرجشون سرباطی تقدیم کنیم اللهم حسن محمد امام امامشناسی با ثبقه غیر کلامی و غیر رائج در کتب عقاید و عرض شد که اون مباحث جایگاه خودش و داره ضرورت خودش و در جایگاه خودش داره ولی در عین حال که لازم هست کافی نیست و چون کافی نبوده احل بید السلام به یک سری ویژگی های دیگری هم در مورد امام معصول علیه السلام پرداختند و اثری که در اثر این بیانها پیدا میشه اصلا قابل مقایسه نیست با اثری که فقط در سایه اون مواحظ پیدا میشه اون مباحث خدا رو فقط معرفی میکنه به عنوان خالق هستی، عزدی، ابدی، عالم، قادر، عین و ادارتی و مثلا راجون برس عدلی هم مطرحه در مقابل اشاعر که قائل به قائل غسل عوب هستن و لذا عدلی نامیده شدند که عموی از شیعه و معتصده و دارم قابلش اشایری ای که این قاعده را قبول نداره نا هست ما پستو کنیم از شیرین حسن, حسن ما حسن آشاره قبیل موقعه آشاره قوم به از حالات نمی کنم یعنی حد بحث دیگه فراتر از اینها نیست بعد به بعضی از فضائل اشاره میشه در ذمه ما باحث کلامی اما نه به این وصعتی که در این نگاه امام شناسی بیدار میکنند. اپنوکاتی عرض شد، نمونای عرض شد، روایت آقا علی ابن موسیقی رزار به خصوص عرض کردی میتونی موضوع بد مدن نظر قرار بگیره و روایت مشابهی که در باره الامانت هست، اونا بد مدن نظر قرار بگیره و حتی روایاتی که در مورد ویژگیهای های امام محسوس نه به علامت وای به ویژگهی ها شماده شده حتی اینا در این نوع امامشناسی باید نظر قرار بگیره و آثاری که در این نوع امامشناسی پیدا میشه و ای که شیعه و نگاهی که شیعه با این مباحث قصد به امامش پیدا میکنه خیلی عنقیتر و زیباتر و تأثیرگزارتره این نگاهی که فدایی پرورش میده برای امام المحسوم. این نگاهی که عاشق پرورش میده نسبت به امام مسوم این نگاهی که محبت امام ماصومو منعکس میکنه نه محبوبیتشو محب بودنشو اینان نمرزال مرازکم، امثال نکیه یعنی او چه مایهی میگذاره برای شیعیانش؟ در همین اداد، نظام مثلا اون روایاتی که امام متحمل دیون شیعیان در یک شیعه روایات که دین شیعه، شیعهی که مدرونه و از دنیا رفته کسی هم نداره، مانی هم نداره که بخوام دیونه خب امام مخصول یکی از تکایب شده که دین این شیعه به گردن امام مخصولی خب اینجا وقتی همین مسئله رو که به همان شاخص امام و علامات امام مطرح نشده ولی همین وقتی نگاه میکنیم خب ای کسی این اعتراض داشته باشه؟ حالا این بد شده یک نگاه در اثر شبهات که نسبت به مراجعی حالا در زمان غیبت، ولی اینا خمس میگیرند که اخباری یجور یه جور زابه گرفتند با این بحث اونایی که مونکره دین هم یه جور که بعد اینا خواهد مال جمع کنند اینا مال مردم میخوان بگیرند به اسم خمس و به اسم زکاة و به اسم دیگه که یه جوری مثلا اینایی که متعی دینداری هم اینایی که متعی که ما مثلا در زمان غیبت مردم باید به ما مراجعه چون دستچو به امام محسوم ندارن پس اینا که همش دارن میان بیاد وجوهات حساب کنید و یه مرتبه اینو میشنوی که دین شیعه مدیونی که مالی نداره میراثی نداره به گردن امام محسوم خب این چقدر نگاه تغییر میده که همش نگاه بستانکارانه نیس همه اشت مثالی را قابض نیستند فقط بگیدند نه؟ ماتی هم هستند و این نگاه که دین اومده به اسم آنها خونسازگات مانم مردم را تشاقب کنه و اولیار دین این نگاه را عوض میکنه سده که امام معشوم به یا امام محبه برش و حتی به قلیل را اینا را سروره های جعفر صلوات الله صلوات الله صلوات یوزرگو به هم مثل کیسه های درمون دینار اعتاقی موسفل جعفر صلوات الله علی زرگ و مثل بوده به اینا مثال میزادن زرگ و شده بود چطور خاتم اعتاقی جوده زرگ و تا یه نفر یه چه قاعده خاتم شده بسرد صبرها کیسههای سله حضرت sorta... امام جعفر سلام الله علیه و دیگر اهل بیت که منوش از بزرگویش و هیات علمی شده اینا هم جزء همین مباحث امام شناسی بیت هست یعنی تمام این ظرافت های رفتاری آن اسم امام جعفر سلام الله علیه اون روایت بی بی اون جا داره اینجا که بست بشه که یه جمعه هزرت دارن موقعی که میان کنار جنازهش اون جمعه ها بپستن بگم ولی باید دیگم میده باید بیشتید یعنی شما هزرت فرموند که ما و امامان جایی مجرای ما تکلیف داریم بر و جنوزه شما حاضر بیشیم اطلاع از این روایت از ساقف رو مناقب ابن همزه، مناقب ابن شهراشد مناقب متعدد در کردن داستان دیویشتی تلوی خب این لطافت امام محسونه ما شامش امام رزرده اسرام، پشت دیواره دوست میگه هزرد از مرکب پیاده شدن دیدیم صدای ناله این گرفتن رفتیم گردیم اعضای جنازه است. هزرد رفتن خود راوی میگه مثل یک بردره چجور به مادرش اونس داره؟ یه بردره داره چطور اونس داره؟, داره. اینجوری رفتن با این جنازه اونس گرفتن و باز مرتبه دوم دوباره با جمعیتیان رفتن دست سوسینش کداشتن، بشارتش دادن، ببینش بعد سار که رو با شما میشناختیم، ما که اینجا نایماده بودیم. از خبال شیعه امام از ما ما نسبت به همه الان اینجوری هستیم. لازم میشوند بشناسیم، همی که شیعه ما، هستن ما، بینید وظیفه امام محسوم، نه به اینکه یک وظیفه قانونی لطافت روحی امام ماسوم. محبت و رحمتی که داره اختزار همین رفتار پاس خب اینا باید به مردم گفته بشه اینا باید شما نار داده بشه اصلا. ما و امامان جاری مجرال ما باید بر جنازه های شما حاضر بشیم و تقال شما کمک کنید تقوا بشه کنید و ما رو کمک کنید تا بتونید دستی بیتون کنید این که حضرت بیان به شتیته سلام برسون این پارچه باره کفنش ببرد. این مال قلیه حالا سیده یا اسم دیگه در برز سوریا مستادم. این ما اونجاست که قلیه مادرمون حضرت فاطمه است. پنگهش ما اونجاست. و این کفن دست بافته بی بی حلیمه با امام صادق علیه شلامه این جذویتش می مقام این کفن دست خودمون خودمونه از قلیه مادرمونه برمشت اینم کفنت این درگمه هم این بشته بود چند روز منظرش روز از زنده هست یا؟ این کفنش اینم مخارجش باز نکتسنجی های حضرت بین اون همه تاقه پارچه بین اون همه درهم و دینار که این اصلا چون حقیر بود مال شتیده اصلا بیادم رفضت کجا گذاشتم سلنه ایت درهم خمش کردم درهمشو و ایتی پارچه بود گذاشتم و ذات فهمود برو درهم شتیده رو بیاد برو پارچه شتیده رو بیاد بقیه اموار رو تجار نیشابور داده بودم عمل رد کردم. اینا رو ببر در همه شتیته و پارچه شتیته رو بیاد و بعد اینا رو که سلامش رو برسون و این کفنش بفرسون این مخارجش چند روز زنده و بهش بگو که من برای مراسم تشکیرش میام خیالش راحت کن و گزارش میکنه که میگه اومدن حضرت تشکیر و من اشاره کردن که چیزی نگو، بعد که تشریح بردن، خب این چیزها رو من نهارو بکردن اومدن برای مراسمش خب وقتی که این حالا درسته جز علامات و امامی جز به صفات امام هست یعنی امام محسوم این گونه رفتار میکنه این هست رفتارهای امام محسوم علیه السلام اگه اجادی این رفتار نکردن کسی نمیتونه نقری داشته باشه ولی الان گزارش های رفتار افتاده است، اینا جزء امام امامشناسیه یعنی به عبارت کلی تمام فضائل امام محسوم علیه رسالام به هر نحوهی که این فضائل مطرح شده چه فضائلی که در قالب معجزات و چه فضائلی که در قبال دستگیری ها و دلسوزی هاست هر نوع فضیلتی که از امام محسوم علیه رسالام منعکس شده در نقرهای معتبر تمام این ها مباحث امام بعض مکنه بوده آخه این ها که مباحث کلا نیست که همین ریزوینی ها همین مباحث به ریز تأثیر داره در گرایش مردم به سمت محسومان یه روکته اخلاقی از هزارات نقل میشه از امیدان اومنی عمید دیگر ها آدمان هم شیفته این انوار مقدسه میکن میان کتابی نیمسن میان صحبت بکنن درباره این انوار مقدسه پس تأثیر داره یعنی سیره اخلاقیشون سیره رفتاریشون همین دستگیری ها امام المسون باید اونقدر کیسه رو دوششکا داشته باشه که جای این کیسه ها مونده باشه مباره مبارکه حتی وقتی مالاوی نهانش میگه داشتم جمع میکردم کمک به پرزد اونونا ریخته بود داشت آقا با اون سند و سالشون خرم شده بودن زمین میداشتن این اونونا رو جمع کدن این که داشتن برای فقرا میبردن بردن ها امام شناسیه و همین نکات بزار ادریس خیلی تأثیر داره در گرایش و عمق معرفت و تقریبا اینو قریبا اینا جذب میشن بعضی هم که جذب شدن اینا رو خبر ندارن اون شیفتگی لازم ندارن و بعضی هم اصلا توجه به این نکات نکردن وقتی توجه میکنن عمق معرفتشون اصلا. سن پیدا میکنه که عجب ما کنار چند بار مقدسهی داریم زندگی میکنیم که برای تک تک ما چه رفتارهایی نشون دادن از خودشون پس مباحث امام شناسی رو نباید در یک چارچوب مشخص و معین و تعریف شده از قبل، سرفصل های تعیین شده ای که اونا رو تعیین کنیم، بعد یه منبع ارائه کنیم و مدرک ارائه کنیم و مصطبی رو بکنیم تو همون چارچوب رو کنیم و کتابی که در امامت می نویسیم فقط همین موضوعات خاص به تعریف شده از قبل در واقع به یک تابیل کلیشه ای اینا رو فرد. نه هر جا یعنی اگه کسی میخواد کتاب در امام شناسی به هر جا همین رفتارها ریز رو هم برخورد کرد باید بیاره منعکس کنه اخلاق الامام اخلاق الامام علیه السلام هم میتونه بخشی از امام شناسی باشه که امام چه جوری برخورد میکردن با جامعه با همسایه با خانواده با کوچیک با بزرگ با زن با مرد چجوری برخورد می‌کردن؟ با فقرا چجوری برخورد میکردن؟ چجوری تربیت می‌کردن اصبابشون اگر می‌دیدن نصبه به نفت آمانت کرده، اگر می‌دیدن یک بد زبانی نشون داده چقدر غیرتی بودن در اینکه که به کسی جسارت نشه؟ این یک وقت جنبه تعلیمی که ما کار باید بکنیم؟ یه اینجوری دیده میشه آدم که من فهمیدم باید چکار کنم از رفتار هزد عصره برای خودم ساختم سرمشق گرفتم باید چکار کنم خب این درست هم هست سرجا خودش محفوظ یه و هست نگاهنده که چه عربابی چه عربابی چه سرمشقی برای ما نوشته قیل از اون جنبه بگه چه عربابی دارم چقدر لطیف فکر میکنه چقدر ذریف فکر میکنه چقدر همه رو می بینه همه رو میبینه. زن و مرد و بچه و همه رو می وقتی بهمون بگن که پیامبر به بچه‌ها سلام میکردن از این بچه رو بیشتره. یه بچه‌ای که هنوز با اهدبه فقط که بیشه آشناست شناسنامه ای ماشناس تو شنناناش نوشتن ولی میفهمهیه بزرگی در آدم هستی. بلکه شخص اول وجود به بچه هم سلام داشت. همین رفتار رزیز شه پیام بشنسی. تباظر پیام بد رو حتی در می‌کنن جرسطالعبی مثل بندگان می‌نشست. کسانی که می‌شنمن اینا رو، اونایی که طبقات زیمین جاوند، در پایین داشت. اینا وقتی می‌شنمن خیلی سر زوح میان که بلگاه از ماهای الاد میدیم شما چقدر فاصله داریم پس شمایی که در لباس دین هستیم چقدر فاصله داریم با اولیاء دین اونا چه برخورد میدیم؟ شما چقدر مغروبیم اونا چقدر متوازن اون شخص اول وجود لولاک لما خلق تا الافلاک چجوری رفتار میکنه آقا علی ابن سر صفره همه نوکره و خادمه و حتی آخرشون هم همه را میشوندن سر صفه اینا برن جدا غذا و خورن اینا لباسشون کسیفه و ماها وقتی اینها میشن خیلی زیبا به نظر کنم تو عمل البته آدم میبینه که نمیشین آسون نیست بری با بندگان غذاب و خوری الان ما حاضر نیستیم مثلا ای چهار تا بنده نشستن چهار تا کارگره حالا ساخته اونی اینجا هم تو خیاب کار نشستن که را تا اون بما بودم بفرما او, او, او این اگه اونجا هزار جور بزر... هم درست داری این ها یعنی کردنه مثلا دباس و, و حرکت ها ولی نه در اون نه. در موردی که فقط فقط مشکل من اینه که میگم آقا زشت یعنی زشتی نه از اون قسمی که میگم بیحرمتی به لباسه شد یعنی به خودم بر میخواه که خب هزارا که میشستن با ها هم غذا میشودن الان توی کرونا محلوم بود که چه رنجی کشیدن چه رنجی کشیدن کسانی که این بیماری رو گرفتن از وحشت مردم ازشون از فرار کردن مردم ازشون یه نگاهی اصلا اول که به اسم قوم هم شد آخوندار بود یه نگاهی شد. شما صادر کنید دیگه کرونا هست مثلا به شهرهای دیگه نرسیده بودن رو سوار نمیکنن کنن مارو دیگه مثلا ماشین ها خب. حالا شما فکر کنین ما تا به سر خودمون نید نمی‌فاییم مردم چه نگاهی به ما داشته باشن؟ نگاهی که اینا خودشون تقسیبال بالا گرفتن اینا موجودات برترن هن، اینا فقط واعظ هن فقط می‌خوان مؤعظه کنن، ما پایین دستی میدونن خودشون رو بالا دستی میدونن و از موضع برتر همیشه ما رو نصیحت میکنن اینجور باشید، مردم با خودشون هم اینجوری نیستن، خودشون مقرور هم باشون دنیا طلاب دنیا خب. این نگاه غلط وقتی که با خبر میشن از سیره مبارک امام محسوم آلیسا امیر و دیگر اخوی شناسیشون برمیگرده به سر جای اولش و میفهمن که ما شون یک افرادی هستیم که عصوه نیستیم امام معصوم عصوه کسی که میخواد دیکتبه نویسه برای سرمشت باید دیکتبه غلط بنویسه سرمشت نویس باید محسوم باشه بی خطا باشه تا بتونه کانند کان فیرسود عصمتان حسنا بشه قرآن فرح، عصوه اینا احلی به عصمان خب عصوه ها باید با تمام ریز و درشت رفتارهاشون معرفی بشن و این میشه امام شناسی. یعنی انتقال سیره عملی، سیره اعتقادی، سیره اخلاقی، احکامی، و زائلی. هر جوری که برخونه‌شون با دشمنان امام حسن علیه السلام از یک دست برورده شامی دست بخت معاویه که پر از نفرین و نفرته پر از جسارته یه مورید برای خودشون میسازن یه عمیر المومنینی میسازن این معاویه چقدر تلاش شیطانی کرده اینا رو با بغض عمیر المومنین بار آورده که اومده وقتی چشمش افتاده به این آقای برازنده خوش, خوش چهره بسیار بجلالتو و فهمیده او پسر علی ابن عوی خیلی بیشتر به خودمون زورش اومده و دیگه رفته هرچی از درنش نرومده گفته و یه مرتبه به جای این که فش بشنمه، لن بشنمه، بگه هرچی میگه خودتی یه مرتبه اینجوری شنیده که تو این شهر قلیلی مثل اینکه ما خونه بزرگی داریم تو خونه ما به عطبت نمیزده گرستنی سیرت میکنیم به رحنه ای دواس میکنشون میبتنه حالا تو این شهر هستی؟ ما از یک دشمن شماره یک برا خودشون و پدر بزرگوشون نمی یه مونی؟ یه محب که آخرش آخرشنی که روزی که اومدم تو این شهر تر از تو و پدرت در دل من کسی نبود. الان که دارم میرم محبوبتر از تو و پدرت در دل من کسی نیست. این رفتارها تحبیت میکنه و محب میسازه. خب این امام شناسیه این سیره ایمام حسن علیه اگر بیان نشه کسی که با این نکته ها جذب میشه و دنبال یک انسان واقعی میگرده تا بره در خدمتش دانو بزنه پیدا میکنه این انسان واقعی رو و میفهمه که این انسان های واقعی جز اهل بیت نور علیه السلام کسای دیگری نیستن و مایل میشه به تشیع میاد زیر خیلی نگاه قدیر و اهل بیدانه این خیلی خیلی رفتارهای ریز جذب کننده در سیره اهل بیدهش. این ما فقط به مواهش کلام امامت و اون مواهش اصلی اتفاق کنیم. اینا رو از دست میدیم. و اینا مهمه. کوچیک ولی ریزه ولی درسته. گوچیک ولی بزرگه. به ظاهر حقیده، باید در واقع کبیده همه این نکتاهای ریز بارها در نمونهای اواییش و تاریکیش جذب کرده قیل شیعه را سر سفره احله بدنشنده بنابراین ما هم نباید قافل بشیم قفلت از این نوع امام شناسی خسارتی هم برای خودمون هم برای ای که متأسفانه به دلایل مختلف داره زده میشه از دین و از اولیا دین داره قرق میکنه با دین و نماز و قرآن و بیت و و با قرآن با اهلبیت با روزه با حرم با حجاب با تقوا داره نشون میده کجی رو خب دوباره بعد امام شناسی در ما کاری نیستیم اونا عصبه ها رو دوباره معرفی کنیم و صد باره معرفی کنیم نقطه مقابلش الان ما مخلون. چی معرفی کنم؟ یه ساختن سقیفه یا بیکار رو نشستن اونا نشستن فضیلت سازی کردن حیا عثمان تو دبایت اونا ضرور نستن که حیار من که خیام می‌کردن از آسمان نمی‌دونم شیطان از عمر می‌ترسید شیطان روی خواب رو که آمد تو روابط جعلی اونا که مثلا می‌زد و می‌رخصید که شما تو جنگ خلاص پیروز شدین من نرس کردن یعنی شما رو یک کنیزی آمده، مقنیه من نرس کردم که اگه شما تو اون جنگ پیروز بشین رو شما رو پیروز بخونم نرزم اداو کنن ازاده من هم بخونم، بفرمایید چند نفر میان، جور زارن، توز امیر آنین هستم این ادامه میده مثل ابوبکشم، فکر کنم، هست میاد، ادامه میده تا عمر میاد یه مرتبه این کنیز جمع میکنه بساطه شو حتی به نظرم تو داره که همون دایرش می‌زاره میذاره و جلوس میفرمند روی همون داییره شو بعد پریغمبر پیغمبر اونو البته، اون همه ساز آواز پیغمبر ما در قداست محض در نورانیت محضه، در عظامت محضه پیغمبر از اونیان خیلی راحته با این چیزا همسرشون بره دو دو شش، اگه بیدتا ما شاپ اون سحنه به کوبارو بری گذارش هایی که دارن دیگه اونجا اینا شیطان و یخاف رو مینکه یا اومر شیطان است که اصفاق می‌بنه و دیدی تو بقیه می‌بادن هیچ کمیزه حکس زمنشون ندادم تا تو, تو اومدی اینجور ترسیل اینه شیطان یه خواف من آمر خب نقطه مقابل شما رو تلاش کردن زبت رو به روخ بکشن که چه ضغطی داشته که یه چیزی به بازار بیارند در مقابل اون همه عزمت امیر المونی نرفسند در اون همه فضاهای امیر المونی نرفسند ولی خبری نبود و خبری نشد و یک بط این انتقال دادند نصب به نصب کسان هم یک باری و و هنوز هم اینا دارن سنمه قرششون رو میپرستن اونتا بگیم به بازار بیادید به بازار محرفت بیارید از فضایل اوتهاتون بگیم معاوی که اینقدر بهتون کمک کرده دیگه فضایل جدی کلی ساخته براتون، پول داده، براتون ساختن آخرش هم میبینیم که این میشه که حالا نوبایت اسم معاویه اومد با همین معاویه خدمش کنیم که به نسائی گفتن که وقتی رفتی دید همیرامون این در شام خیلی مزلوم یک کتاب نیشونه فضاقیل علی ابن عبی طالب اومد از سراغش که برای علی ابن عبی طالب نمیشتی برای معامیم وقته میگیشی آزا سنیه دیگه, دیگه ایک از کتبه کس از این سننه ولی گفت چی بینیشن برای معامیم چه فضیلتی داره که لغو تحمل لا اشراح لا بطنه رو ببینشم که یه جایی گفتن که پیامبر نفسینش کردن خدا شکر هم توصیر نکنه همون لاوه فزیلت باشه این گرفت من قز زدان نشو مجرب ماقشم شد تو دارم که آجا بر معاویه کتاب نمیدیش کتابا نمینیش و حالا زهبیشون بعد از اینو دیدنسه همین فضیلت بود گفته فرمان همین فضیلت بود همین آنی اون سازی با چه دست و که مگه روایت نداریم؟ از پیامبر که خدای من یه بشری هستم امتباه باز ارز میکنم پیانبر اونا پیانبر اونا اینجوریه بشری هستم قذک میکنم فش میدم در میکنم و خدای هر کسی که من لعن نفرین کردم و ما گفتم و بیجا بود تو این باراش رحمت قرار بده پس این هم برای ما فضیلت شد این رو نیست. نظرم در تسکیت با لفاظه همین چیزی که نسایی به تعالی گفت که این روی گفت که و همین فضیلت بود بله بله به همین فضیلت معاویه بود چون همین لحن معاویه و همین لحنی که پیانور رو لا عشبال و نفرین پیانور نفرین پیانور با اون روایتی که داریم که من بی جا نفرین میکنم کنارم بزن این اصلا فضایل میشه چون بیجان جان کردن و تبدیل شده به رحمت براش شد فضایی در اون ببینید یعنی سنی باید اینجور و بسانه و فضایی دستازی وقت ما با دست پری در فضایل و امام شناسی بنشینیم به اون مسئله کلان امام شناسی اتفاق کنیم نه ما این هم مبارک رو به عنوان امام شناسی باید نقل کنیم تا معرفت الامام اوچ بگیره و همین مطالب ریز تاثیر تأثیر داره در بین همه مردم ها نه فقط کسانی که حالا یه مثلا خبری از عهدوید دارن و دوره عهدوید بودن و یا حتی قریبه کامل با دین منطقی ایزبه انسانیت در وجودش باشه یه ضرور کمال انسانی رو بفهم نه اینکه دیوازگونم اصلا اون تیپ فضلقلیز و باشه که اصلا با ظلمت حال میکنن با نور اصلا نور چشمش رو میدنه هفواشن به تاریک عوادت ده اونا نه این کسی که نور رو میفهمه یه ضرور نور رو بفهمه اینجا زانون میشه ده سر صفره امام شناسی با تمام و تمام فضایی که این صفره را بنگیم کرده برزن تمام با با روزه خون میکیم مجلس ما این شارلا به برکت احادیث احلی بیت نورمسان برکت زکتون اصلاح که این دوتا به تشریح استاق احیار هم رو احلی بیت نورمسان مقصوب مجلس ما همه این محافلی که برگزار میشه هر جا به نیت بیت نور علیه ما سلام و همشون به امزای حضرت زهرا سلام الله علیه هم مزعین بشه این شبه تو مجلس قبلی روزه قاسم ابلن حسن علیه السلام و عبدالله به حسن بخونیم که اولاد امام حسن موهر دیگه ارام امام حسن حسن مزینه سلامتون هر کسی که میخواست بر میدان اول باید استیزان میکرد از عبا عبدالله از که میومدن یه سلام میدادن همون سلام استیزان بره. سلام علیه که عبا عبدالله از ذکر میکردن برید نوبت هاشمی ها شد اصحاب یک به یک خاک خونوف دارن اول قطیل من نست خیلی سریل اومد فسته از النقاقو فعزننه بلا فاسده به علیه که اجازه میدان دادن هر چند بعدش نظر الیه نظر آی سمه ولی نوبت به یادگار برادر که رسید فعتنقا اجازه نمیداده موسیقی و وبکیا حتی عوشی علیه هم دستگردنم انداختن انقدر گریه کردن این امو و بلازرزاده کرد و تا به حالت قشتر من این اونقدر گل بود اونقدر لاله بود خب لن یبلوغ به بزار مکلف نبودن حتی قواره نداشت آسن علم حسن آنقدر گریه کرد اجازه گرفت و رفت مثل هزار مرد اجازه گرفت و او را سوار از خودم کرده مشکره بود و سر اجازه گرفت و رفت, و گرفت و رفت. حسن دی، به دامان نشده او کرد. وقتی به حال اومدن اجازه رو گرفت و خیلی بود رفتنش امان حسینگور فقط نگران بود که این شاهزاده میدان چه میکنه همینجور گوش به زنگ میدان بود خب نبرد شایه کرد و با همون قبوله او تو رجزش بود معرفی کرد و تنها رجزی که روزه امام حسین توش خونده شده رجز قاسم اولیان حسن انتون کرونی فعنب نال حسن سبت النبی المصطفل معتمن نمیشنه شد حالا این توضیحش از من یه بقد قبارم نگاهد اناب نال من بچه سردار جملم هم سبت النبی المصطفل معتمن بعد روزه شخون. آزا حسینون کل اسیر المرتحن این آقای قریب هم عموی من امام حسین مثل یک اسیری که به دهکار دور رو کردین و این آنا حسین لاسقو سعوب اینجوری رفت میدان جنگش رو شروع کرد با همون گوچیکی جسد افراد زیادی رو به خاک حلاکت انداخت. اما حسین همینجور دل نگرانه گوش به زنگ میدانه یه منتبه دید یه صدا و یه زعیفی میگه اما واع اما از میدان صدا کردیم مرا اما چه دن منهن به دنبال صدا اما شد دی میدان پر از گرد حمله خوب من به زحمت جستمد ای با وفا اما چه درد تو از های تو معلوم بود تا قبار نشست فنجلت فا ادا به غلام و هو یفحصا به رجبه قبار که نشست دیده شدت درداره پاشنه پاشه به زمین میکشه درد تو نمست کن کشی تو معلوم بود بهر این درد تو آوردم دواب اما چه یک زره در خیمه ها اندازت پیدا نشد اما حالا اندازت شده داد کشیدی قد كشفي زیر رسن اشوا بنظم ام شديد ذرو امو به شهادت بشيد چه بنا ابو عبد الله فاحتمله على صدر آسمو به سینه گرف رابی روی میگه و رجلاه ی خودتان علم یادگار برادرشو میبر همینجور پاش به زمین کشیده این یادگارم حسن بود دو تا از یادگاران، سه تا کربلا بودن، دوتاشون تو آقوش امام حسین به شهادت بسیدن. غهزه آخر بود، از نام ایش آخزادم نگذرن. امام حسین دیگه هیچ رمقی نداشت. فقط تناشا میکرد خیمه ها رو، که قدرت شدن نداشت، قدرت جنگی دن نداشت. فقط داشت با حسرات خیمه ها رو نگاه میکر. انقدر خون از بدن مبارکش رفته بود دیگه به گروهی اما آقا نداشت. یه منطبه چشمش افتاد تو خیمه ها به عبدالله و انداشت نگاه میکرد قتلگاهو تو نگاهش همه و خون داد زد امام حسین یا اختائه بسیر زهنم بگیر عبدالله و فهمید علمانه که بیارد دشند قتلگاهو دامنی را که زدی چنگ رها کن ام حاجت طفل یتیم است روا کن ام امویم گهشت زنت داد بگیرش زینه گوش این بار فقط حرف مرا کن ام بذار برم هرچی به گورا او رو گرفتن لا والله لا افارق و امی به هر زحمتی بود خودشو از دست ام مرحانی دوان دوان رفت لحظهی رسید شمشیری به سمت امام حسین بلند شدن. نه زره داره نه سفر داره نه شمشیر داره نه میزه داره و بلند کرد جدوشم شیر گرد صدای شکستن حصطفان عبدالله گرفتر آقوش عبدالله برادر میشه تا بالبار میشه در نه بود فرما, هر ملات عبارت این جوریه. فرما ها هرملت و نکاهر دو جا در کبولات مقاتل عبارت اینجوریه که فرما ها فضبحه تیر که کارش نمیکردند کردن نیسته دو جایی یکی موقع شیرخاره رباب نمشتن فضبحه هم بود برا عبدالله هم نمشتن فرما ها هرملت و فذبه في حجر عمنه وس سياد في السيد دويدان عجبينيس السيدة في السياد دويدان باب المستقع الغريب يا أبا عبد الله يا رب الحسين بحق المحسن إش بالصد ر الحسن, الحسن. بظهور النهجة يا رب فاطمة بحق فاطمة إش بالصد ر فاطمة بظهور النهجة يا رب النهجة بعد النهجة اشر صدر الهجة بظهور الهجة فرج عنه فرجا عاجلا قريبا وفرج عن جميع شيعته ومحبيه جاه محمد وآله الصاهرين